بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرح الأنبياء وسيد المرسلين وأليه والصحب الأجمعين أما بعد نوع بسوم مدرج يقول الوالد رحمه الله بسم الله هي الفاظ تقع من بعضها البعض مختلطه بالملذ لا يدرك السامع الا أنها من سوله الحديث فيا والذي يدل على انها من لفظ الروضو ده راء لاي من الحديث من بعض الطرق ذي عباره افسهاظه من هذا فقد طريق ظني بان فهم فهم دعوا ففنجوا فهم دعوا من المد و يضرب الادراج في مقتل المد كما لو كان منبثق من ثانيه من كه وذكره فليتوضا بحث مدرج مدرج در لغت عربی به معنای چیزی در چیزی دیگر فرو بردن مثلا به فرض بکشو کشو کی داخل میصد بهش میگن درج ادراج میشه یعنی در جایگاه خودش قرار میگیره چیزی در جایگاه دیگری قرار میگیره بهش میگن ادراج این در لغت چیزی در چیزی دیگر قرار گرفتن. اما در استقابه محدثی عباراتی هست که بعضی از رابیان به متن حدیث اضافه می کنند بعضی از عباراتی که بعضی از رابیان به متن حدیث اضافه می کند و اینچینین به ما میشه که اون چیزی که اضافه شده از متن حدیث در ادراج فکر می کنیم اون چیزی که اضافه شده متن حدیثه پس عبارات هست که بعد از راقی هم به حدیث اضافه میکنن و ما ها فکر می کنیم که اون از خود حدیثه عباراتی که به اصل حدیث اضافه میشه و ما فکر میکنیم که از خود حدیثه بله ادراج حالا از این تعریف اینچنین برداشت میشه که ادراج فقط در متن امام من حجر در نصحه تا استدراب می این تعریفی که الان امام زهبی داره و دیگه که ادراج همونطور که در مدن هست در اصنادم هست. میشه جاهایی در اصنادم ادراج بشه که امام ابن سلاح تقریبا پنج نوع از این ادراج در اصناح ذکر میتوه که الان جایی بحثش و تفسیرش نیست. میدید که این فقط از بار تذکر بخواستم که بگم. ادراج نه تنها در متنه بلکه در افنادم هست این تعریفی که الان داریم ما در متن ولیکن بهش میتونیم اضافه بکنیم به اصناعات ادراج در اصنادم هست خب چوبی隨 ما میتونیم تشخیص بدیم که این لفظ ادراجه چوبی개를 میتونی تشخیص بدیم که این لفظ اضافه از رابیه هست تشخیص ما که ما طرق حدیث ها جمعو assembleیم بویر بعد یکی از طرق ها مشخص بشه ki eem guyande ravi hatna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Turuk ahadithu jamu alayhi wa kuni? Dar yeke ee as turuk ahadith, ravi bieke kichi? Ravi bieke, mislala bil faars, eem gufte gufte imana ba, yow mislala bieke meslala eem tahtirin kalamehahat. Oya yakulu ashaqa, oyaakulu, mislala wa yadulu dadilu adilu adilu adilu adu adu adu adu adu adu adu adu adu adu adu adu adu adu adu adu adu adu adu adu би عبارهи тасил من мин 하다 би عبارهи ани аз база астрофиас бо عبارهи ки ташхис бидин ин аз матн хадис ва ин ам ба хаз занно гамоне агар он тариқи ки ин фейсле дар асоси умед бошад заиф бошад диге аз ба ин ки он қатъ ас он қатъ ас хадис асход хадисе он қатъи و بیه که خود امام ذهبی میگه که ادراج در وسط مدنم خیلی بعیده یعنی خیلی کم بنادره مثل حدیث من مست اونتییه و ذکره و کسی که دست بخوایش و همچنین ذکرش بگیره باید موضوع بگیره این اونتییه این عبارت در وسط حدیث ادراج شده از تحصیل خود راوی هست از, از ادراج راوی هست در وسط مدنم که اصل بر اینکه این رواد اصل زیفه احتجاج بهش نمیشه با بخاطر همین اصل ادراج بودنش زیفه خب امام خفیه باقی هم همسون تمام زهبی میبیاد و قبسن نفتی خفیه دنبالش و قبسن نفتی خفیه تردیده و قبسن نفتی خفیه تردیده و مسلم غیر مسلم له ادراج بودن له ادراج بودن امام خفیدی بغدادی هم در همین زمینه کتابی می نویسه به اسم فصل الوصل لما ادرجت النقلی فصل الوصل فصل الوصل لما ادرجت النقلی این استخفات و خطابی هست امام خفیدی بغدادی نوشته ما قبل هم اشاره امام خفیدی بغدادی از جمله علمای که در هر سنف حدیث، در بحث ادراج، در بحث افراد، در بحث نبیدونم آها، در بحث فلان و فلان در هر موضوع حدیثی یک کتاب مستقل نوشته از جمله موضوعاتی که کتاب موضوعاتی که کتاب نوشته در بحث ادراجه ذکر رابیانو کرده که چه کسانی از رابیان و چه هایی بوردن که درش ادراج شده کتابش بطور مفصل، کتابی هست که امام میکن که مدخش میکنه، ستایشش میکنه زين میگه در اثار علم الحديث وقد صنف ابو بکر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل ماودعه في النجو وهو مفيد جدا ايوا من حجره مياز ان كتاب كامل میکنه واسمشو میذاره تقريب المنهج بترتيب المدرج تقريب المنهج بترتيب المدرج بل ان كتاب از خدمات هاي ائمه و علما كه به خب امام زهبی چنین میبید خطیه برداده کتابی در ضمن ادراج نوشته و خیلی از جاها هم ما تسلیمش نمیشیم و قبولش نداریم در بعضی احکامش در بعضی از انتقاداتش که از ادراج ما قبول نداریم این اون چیزی که الان امام زهبی میگی بحث انتقادات و بحث اینا بحثش مفصله که الان جای باز کردن و جای بحثش نیست. می‌دیدید باید بگید مثلا به فرض سلسله ضعیفه یا سلسله احی آلبانی مثلا به فرض می‌دیدید کلمه مدرج جامد کلی شامل نمی‌ویسید مدرج نگاه بکنید مثلا چه روایط هایی هست که شخالبانی آلبانی شخص رو ادراجش داده حالا خصوصا سلسل در سلسله ضعیفه مثلا می‌رید سلسله ضعیفه را مثلا باز بکنید می‌بینیدید مدرج می می‌بینید مثلا روایت اول دوم سوم مثلا بهتون ذکر می‌کنه چه روایتی هست که شیخ تضعیفش کرده به علت ادراجش که ما برای ما تره ایجاد نشه که این از متن حدیثه آلوانی تضعیفش کرده به اعتبار اینکه این از لفظ رسلا سلسل هم نیست باید از لفظ رابی هست و یکی ارزالها تابعی یا تابع تابعی میبونه اونم این که اگر ما ببینیم که رابی ادراج بکنه و ادراجش هم تیوری باشه که ما تشخیص ندیم که از متن حدیث هست یا نیست حکم این رابی چی هست؟ امام السمعاني تشين ابن السمعاني من تعمد الادراج فهو ساقط العداله ككي ادراج بكونه ديج العداله ساقطه و من من يحرف الكلمه عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين اذا دي كلامه اعوذ مكن هلا هرشم ان خيلي شريعه وخيلي همتونده درس کثاره نگه اعتراض می کنن تو خیلی از ائمه ما دارن که اعتراض میکنن مثل امام زهرایی و دیگر در تفسیر غریب حدیث مثلا میان مثلا یفاجی لازم در حدیث میان بعد میگن یعنی کذا و کذا معنای چینی نه معنای یا maksud چینی میان میون شرحش میدن و هیچ هیچکدوم از این ائمه علمای حدیث و نقاد علم جرح و تعدیل نمیدن که هرکذا حدیث بکونن از ائمه بزرگ مثل سفیان صوری یا مثلا مثلا صوری دیگرانی که معروفن به شرح بعضی از غریبا صلی الله نزدیکیشون بعد از رسول الله صلی الله علیه و وقتی که می‌دیدن می می که مثلا یک لفظی مشکل هست سامعین نمیتونن بفهمن من شرحشون می‌دادن در ضمنی که حدیث رو میگفتن شرحش هم می‌دادن خب راویانی اینکه ای کسانی که ناقلا ندینات نشسته بودن اونها فکر میکردن که چی این شرحی که داره این امام می‌ده از خود متن حدیثه در نتیجه تصدیقش میکردن اضافهاش می‌کردن به متن حدیث پس متهم خود ایمین نیستن بلکه کسانی که از اونها اشتباه شدیدن و اونو به حدیث و روایت اضافه کردن. مگر اینکه قصد رای مشخص شده برای ما. یعنی ما بدونیم این کسی که ادراج میکنه هدفش حد... تحریفه. مثل بعد از گروهگان هستن که مثلا میان حدیث مثلا این نمال عمال به نیات را بعد در نبالیس مثلا یک پسفند ها یک پشفند میارن که مثلا این میادین ایجاد بشه که بله باید نیت با لفظ گفته بشه ان من عمدا نیت بعدش می مثلا به فرد ادراج میکنه و کسی که واس نماز بکنه بگه نیت وصلت نمیگذره خب موزه که مثلا شخص داره ادراج میکنه داره این حرف اضافی میکنه به حدیث که حدیثو تحریف بکنه از معنای اصلیش خارجش بکنه نیتی که در قلب دونان یا قصد اومده چی ورده به نحوه تلفظ و تلفظ کردن نیت خب این از مسائل هستی الا مشلان به تشارک کرده یعنی محمد احمد شاکر هم در باعث حسیس قال لتهای ادراج و خلاصش میکنه و چنین میگه میکن. میگه که اصل ادراج که در علم مصطلح حدیث بحثش میشه الله لته وجود اشینی میگه که اولا به خاطر استلبات های فقیه هست مثلا جاهایی مثلا مثلا خود ابو حرره در بحث من اصطا این قیل امراد در فریت حالا در در موله بحث میاد که خود ابو حرره اجتهاد می کنه و دستاشو مثلا به فرستا زیر بقلش مثلا می شوره مثلا بحث اون بحثش در آنزف الهکام هست و مفصلش بحث میشه. جاهای هم یک مسئله عقدی هست، زیر از مسئله مسئله فقیه، این عقدی یا مسئله مثلا بالفرز اه... یک مسئله تاریخی مثلا در ضمن حدیث بیان میشه جاهایی هم برای بیشتر هم برای شرح یک مشکل در للحدیث یک غریبی، یک لبزی هست، یک متنی هست یا کلمه هست در ضمن حدیث که مفهوم شبارتش مشخص نیست راوی میاد شرحش بده و توضیحش بده بله، الفاظ عدا بی فقد حدد مستمعه لمصمعه ملت الشيء واصطلح على ان حددني لمصمعه لمجموعه واحده فحددنا لمصمعه مع ديت بيروت وبعد ان اصطلح حددنا في ما قرره تراءوا تراءوا على الشيء واما اخبرنا تتواجد على مصمعه من نفس الشيء على ما سمع. على ما من لفظ الشيخ هو وكرأه وقرأه آخره على الشيخ و هو يسمعه بقى الفاظ عداهون الفاظي كما بيتوني حديث رو انتقال بدين نعقدش بكوني براي سمعته سمعتو وحدثنا واخبرنا وانبعنا اينا همه الفاظ عداه هست علا ولمو اختلاف درن كدوم يكحبيتن شما الان دليد ازمان مشتري كدوم يكحبيتن شما بيگت سمعتو يا حدثنا يا یا اخبرانه یا اخبرانی یا انبعنه یا انبعنی کدوم یک قوی تره یا ببین خاله کدوم یک از اینه قوی تره اینجا عالم و اصطلاف دارم بله در بحث حدثنا و سمعتو عبارت از که رابیان به کار میبره لبسی که از شیخ شدیدن و حدثنی به اون روایاتی گفته میشه که الله او رو نبی نقل میکنه خودش به تنهایی از شیخ شنیده حدتنی به تنهایی شنیده از شیخش و حدثنا روا جاه جامعه ای از الصلاح نشستهن از شیخشون میشنوت و بعضی هم اجازه دادن برای اینکه در اون چیزی که بر شیخ خونده میشه مثلا از کتاب شیخ بر شیخ خونده میشه گفته میشه حدثنا لیکن الان بحث در اینجاست کدام یک طویتر حدثنا یا حدثنی یا سمعتو اون چیز دیگه ترجیح خفیب و بغزادی هست میگه که بالاترینش سمنتو هست بعد حدثانا و حدثانی ابن سلاح میگوید که حدثانا و و اخبرانا بالاتر از سمنتو هستن چرا؟ چون در حدثانا و اخبرانا قصد اون شیخ نقل حدیثه مثلا شما بالپرس اگر در یک سخنرانی از یک استادی شنیده باشید ۶۰ نمیتونید بگید حدثه نه و اقباره چون قصد اون مثلا قصدش نداشت ولی در سمعتو لازم نیست که شیخ قصد داشته باشه تو خرام داری می کنید بگید ولی من شه نیدم که میگه حدث اون شيخ نه لحدیثه بیده این الان ترشیخ امام ibn السلام و همچنین ابن ابن که ای un ه ه ه ا مث علامه ابن حجرم جایی میبینیم که سمعتو را بالاتر از حدتنی میدونه و جای دیگر حدتنی را بالاتر میدونه ولی که اون چیزی که ما میتونیم ترجیحش بریم در این حیافوی مثلا بحث ترجیح بین حدتنا و سمعتو یا حدتنی نگاه بکنید اینا همه عبارات ها یکی هست حدتنا حدیث را به من نفت داد اخبرنا به من خبر داد سمعتو شنیدم. اگر ما نگاه بکنید دقت بکنیم در الفاظ صحابه صحابه بیشتر سمعتو به کار. سمعتو نبی صلی اللہ علیه وسلم بیا خود. سمعتو را به میبرن. بیشتر از صحابه چی نیم سمعتو. چون رسول الله صلی اللہ علیه وسلم وقتی که نقل میکنن یک چیزی میگن حرف و سخنی میدنن هدفش مشخصه. که یک علمی را به بی دیگران برسنه. حالا چه در باشه؟ چه در کوچه باشه چه در نمیدونم برای منبر باشه چه در مسجد باشه چه در خانه, خانه باشه با آیشه در صحبت میکنه هر جا باشه آیا مهم اینی که رسواست بیشینی در اثر کتاب باز بکنه یا بیشینی مثلا به فرض به آیشه بگه نمیدونم فلان بر من بحث شده چین بکن چنان بکن نه هیچ وقت قصد مشخص نشده در نقل هیچ وقت قصد مشخص نشده و قصد بر وزن این کلمات که کدام یک از این کلمات در الفاظ عدا قدیتر از دیگری هست که ما بگیم الان بخان صرف تحس سمیعتو قدیتر از حدتنا ما ترجیخمون منفرم ترجیخم بر اینه سمعتو این که سمیعتو به علت اینکه که صحابه بیشتر بکار میبرن و این چیزی که معهود بوده در نزد صحابه سمیعتو اولاتره سمیعتو اولاتره دیگه تدلیف درش نمیاد چون در بحث حدثانی و حدثانا، در حد چند که در سمعتا تدریس میاد مثلا در فرس از پشت در، مثلا ما داری ایمه حدیث شیف برونش میکنه، از پشت در پشت و پس میاد اون حدث را به ما نقل میکنه با سمعتو دیگه دروک که نمیگه شنیده از شیفش را در ما نقل میکنه هر و کلی این الفاظ سمعتو و حدثانا و حدثانی و اخبرانا و اخبرانی در ی در یک وزنن و سمعتو اگر ما میلی داشته باشیم به قمی تر به بخاطر فقط استفاده اصحابه از این چینین الفاظ هست و از این لبزه که زیاد استفاده کردند. اما اخبرانه اخبرانه برعکس حدده تنه و سمعتو بر یا صادق هست بر روایاتی که از شیخ شیده شده و همچنین رووارد هایی که خونده شده به ما داریم گوش مییم شاگردان جهان گوش میدن یک شخصی مثلا کتابش تو رو برداشت داره میکنه یا خودش میکنه یا دیگری میکنه و او گوش میده فرقی نداره اخبران ها در همین و کاربرده چه خودش کتاب رو برداشتن میکنه؟ چه شیخ میکنه و چه کسی دیگر میکنه و او یاره گوش میده؟ همه اینها اخباران و خبرانی به کاربرده میشداره فلب دوره من التحديث واخبرني للمصري طلب المحقق محققونا كمالك بالاطار بين حدثنا, امترج امترج من حدثنا واخبرنا ختمته والان ذكروا ذلك لكن هم تشنه گفتم تشنه منم در حدیث بخاری و مالک برای اینکه این یک رازی دارند در فأما أنبأنا وأنا وكذلك لكما ظلبت في عفل المتأخرين على الإجازة فقوه تعالى قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليل الخبير دارا على التساري والحديث والقبل والنبو مترادقات وأما المباربة فيتلكون أخفارا على ما هو إجابة. حتى ان بعدهم حتى ان بعدهم جذله او اجازه حدثنا فادى تدريب ومن الناس لنا بحث بحث من عك قال لها اجازه ومناوله لكن الامر خريج ده انت تقعد يوم بس اخبرنا شطور ما نجي الشيخ بون خبر ذاته دراستك شاور ديجر ميكونه يا شخص ديجا داري ميكونه وما داري نجي اخبرنا الشيخ بموشي خبر ذات شطور امام بخاریش این استدلالش در صحیح بخاری استدلالش به حدیث ذمام النسعلبه چی اینه در نفس که باید که ذمام النسعلبه بیاد در نظر رسول الله صلی اللہ علیه و سی یا نظر رسول الله صلی اللہ علیه و سیم بیاد بچی اون میگه الله امرک انت صلی صلی خدا به حس امرو داده که این نمازهای فردنو پرنجبانه فاعدل بکنی بعد اصلا بیگه آری خب بعضی وقتا مسئله برمیگرده و به بر قمش یاد میگه میگه رسول به من گفته خبر داده بر اینکه نمازهای فرضه پنج جزانه امریه از طرف خداوند درسته آیا بهش گفته بود این چیزین عبارت؟ یا اینکه خبری تقریری یعنی رسولش تأییدش کرده بر حسب اون عباراتی که داره میگه خبری تقریری به رسولش تقریرش کرده بر اون چیزی که داره میگه رسول داره تأیید میکنه خدا برسه کرده که این چیزین کاری بکنیم میگه می بله آرین بعد نیا دقومش هم که برای رسال ها بزنگ گفته که این نمازها خدا به هم دست کرده که انجامش بدم. پس شیخ وقتی که برش خونده میشه و تعیید میکنه مثلی که خودست به دیگران خونده و و نقضی هرده درست فرقی با هم دیگه نداره اینم علفابی که بدونی درلی تدلیس درش نیست و درود درش نیست میتونید تونید مثلا کتابی که بر شیخ کتاب خودش خونده بشه و شیخ امثال این بکنه میتونید تونید دقیق به موسی خبر داده بله میگه لفظ خبر یکم عمومی‌تر از در حدیث اخبارنیه برای منفرد به کار برده میشه اخبار بله یعنی حد حدیث حدثنا و حدثنی و سمعته خصصه ده ده خصصه حدیثه ولی اخبرنا در آثار و در روایت ها و در روایت تاریخی و در همیجه گخار مرده میشه خبری که ما میشنیم عام و خیلی از محققیه مثل بانک و بخاری هم این الفاظ یکی دونست هم مثل حدیت نو اخبار نو سمیت حالا این امرم گفتیم امر باسعی هست که خیلی آنچنان به درد ما ها در امروز نگه یعنی الان امروزه فقط تنها چیزی که به درزمون میخوره در تشخیص قوت روایات مثلا بالفرز در صحیح این و در سنن و دیگر روایات هست. مثلا تشخیص میدیم که چرا اینجا حدتنا بکار بود یا انبعنا بکار بود کدومیی بر دیگری برتری گرد. اما انبعنا و انا بله نبا کنید مثلا اختصارا شما شده؟ مثلا من نوشتیم در ایک از کتاب ها نس روایت او بودم از رحی بخاری امان بخ مثلا ما می‌بینیم حدثنا را سنا می‌نویسه. خب اون ویراستار اومد بود مثلا این حدثنا این سنا که نوشته بود، ما هم نوشته بود که منظور چی نوشته بود اون حدثنا. حدثنا اون سنا رو کرده بود، نوشته بود بجایش حدثنا. ولی زیادی از ماست. لیکن مفہومش همونه. یعنی سنا یعنی حدثنا. سنا یعنی حدثنا. یعنی فقط که اینجا ناقصه حرفی جو استاد یا از قلمش حَدَّثَنَا رَسَنُو نِمِسَن وَأَنْبَأَنَا رَأَنَا نِمِسَن وَأَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا رُو نَوْ نِمِسَن نَوْ یَتَنَهَا نَوْ أَخْبَرَنَا سَنَا حَدَّثَنَا وَأَنْبَأَنَا أَنَا این اختصاراتی هست که به کار انا این زیاده رو بحث انبعنا وقتی که مثلا در فرز خوصا سحی ابن خوزیمه و یا صاحب ابن حبار رو میکنن مثلا در در حدیث حجات رو بعد میگه بعد و انا دوباله در بحث رو کامل، کاملش میکنن این, این اناس. انا نیست ان این اناست انا به معنی انبعنا بله ولی که این انبعنا بیشتر در غرف علماء حدیث خوصا متأخرین بعد از ابن در اجازه کار برده میشه، مثلا شیخ کتابی نوشته به شاگردش میده نیده تو حق داری از این کتاب از من نقل بکنیم، این کتاب تایید شده هست مثل همون تقریبی که قبلاً گفتیم در حدیث دومامر نسالبه اینجا هم مثل همون تأییدی هست و تقریبی هست از طرف شیخ و شیخ بهش اجازه میده که طرف مقابل از این کتاب هر حدیث خاص نعم رو انتقال بده و استجلال هم در بحث انبعنا به سرمودیل خدواند قالت من انبعه هادا قالنبعنی العليم الخبير قالت من انبعه هادا گفت که چه کسی اینو بهت گفته بگو که خدواند علیم و خبیری اینو به من خبر داده بله این آیت دلیل بر این است که حدیث و خبر و نبع و نبع همه این همه این ایمای مغرب اخبرانا را در اجازه به کار میبرن متأخرین الا اونجا که داشتید متأخرین اونا وقتین هرجره اصلا خاص خودشون داره متأخرین از علما ان را در اجازه به کار میبرن علمای مغرب اخبرانا را در اجازه به کار میبرن و بعضی ما هم از باب تدریس حدثنا هم به کار میبرن ولی اینو ویدید خیلی کم نا داره اصل اینه که حدثنا در روایاتی هست از شیخ شنیدن حدهتنا از شیخ شنیدن دیگه اجازه درش فقط بعضی حال تلکیس کردن از علموی مغرب و حدهتنا را در اجازه به کار بردن بقاطر همین که گفتم حدهتنا از اخبران قدیده چون اخبران ها در اجازه به کار برده میشه ولی حدهتنا به کار برده نمیشه سمیعتا هم به کار برده نمیشه پس سمیعتا به اعتبار قوت استخدامش از طرف ط و حددنا بخاطر اینکه تذلیل درش به کار بشه و اخبارنا بخاطر اینکه خیلی از علما در اجازه از این لفظ به کار بردن از لفظ اخبارنا و بعد میخواهم قال را اجازه و مناوله حسابش کردن و من الناس من حد قال لنا اجازه و مناوله که قبلا بحثش کردیم در حدیث معاذ قال لنا قال درسته که اونجا گفتیم این از قبیل چی هست؟ اجازه و, و منابراه یعنی شیخ بهش اجازه داده از کتاب شیخ داره نقل میکنه و یا کتابش بهش داده یا اجازه داده که اون روایت درش نقل بکنه خب بمینه تدریس بمینه تدریس اگه یکول محذنیت عن شیخ عن شیخ الگه سامعه بی, اما... بی اماکنه لم یسمعه کوری عالا خولان اخبرت خولان فارقنا وقع على ذلك الدور رزق تارق الخطير يقول قرع على حلقه الفاطم البابري اخبرك فلان فقلوا معي قيل على عبد الرحمن جعفر الفاروق حدثنا خالد تارق سليمان فمن ذلك اخبرنا فلان من كتاب تاريخ تواريخ ابن سعيد يابغ وقال لدينا ذكر يوسف بن في مدار يراجع يراجع هذا كما ذكرت رجعوا الى حاضر حضر على على الشيخ وهو وهو في السنتين كاسات ويقول ان ام يقول و على حاضر فذا الحضور العلي علي فذا الحضور فذا الحضور عليو علي لا يفيد الاتصال بل هو نوع من الجذا فالجذا ليس نوع الاتصال عبد عبد الهند ان يعني بس از جمله تح... از جمله تدلیس در بحث استفاده از همین الفاظ ادا اینه که یک یکی از محدثین محدثینی که نشیده در جاهای مختلف بگه مثلا بر شیخ فلانی قرائت شده که این چنین خبر ازت اد ند شده اخبار تا فلان بر شیخ فلانی خونده بشه کتاب فلان بشه حدت نفران کنانه به گفته بشه از تو یا تو از فلانی شنیدی تا آخریست. امام داراقوکی میگه اینچنین تدریسی را به کار میبره. در روایت هایی که از شیخ مستقیمن نشنیده. از شیخ میکرده شنیده. میگه که قرع علاقونا بر فلانی خونده شده. مثلا در یک کتاب سحی بخاری بریم. سحی بخاری و شاگردانش. مثلا ده رفت از شاگردانش نفت کردم برای ما درسته؟ یوسف و حسن و فلان و فلان درس نخط دادن چند نفر رو که دارن نش نخط میکنن امام دراغوتی میگه بله قرء علی فلان اخبرک فلان. اخبر فلان بر فنانی خونده شده میگه این تعصیست قرء علی آی تو شنیدی که مگر خونده شده برش کسی که میشناسه فکر میکنه که چیه قرء علی کنا مثل این که امام دراغوتنی حاضر بوده در اون جلسه بر شنیده که برش خنده شده درسته که چی نیستی نبه هرچه امام زهلی از دراخوزه دفاع می که دهنی مثله عجبه کسانی که متهمن به همین بحث قرآ در بحث رای جازب و منابله و این الفاظی که به کار برده میشه امام ابو نعیم هست که این الفاظ را بخار می که قرآ علی عبدالله عبدالله ابن جعفر ابن فارح حدده نهارون ابن سلیمان چهار تار روایت هست، از چهار تراغی، از صدیق ابو نعیم که متهم هستش بهش امام ابن در تذکرات الحفاظ و همچنین ابن النجار و ختیب و امام ابن حجر و دیگر ایمه از اشتفاق میکنن از امام ابو نعیم حالا این بحثش مپسل که الان پر باز کردنش نیست از جمعه تلیسات گفته بش اخبار انا فلانون من کتابه فلانی از کتابش به ما خبر داده مثلا بفر شما کتاب صحیح بخاری دارید بگید اخبرنا البخاری من کتابه الا من کتابه من از کتابشه در کتابش یعنی از این کتابی که داریم ما میخونیم کسی که میشه فکر میکنه بخاری به ما خبر داده از کتابش نه از یه کتابش از کتابش به ما خبر داده شخصی که می فکر میکنه چینی از کتابش منظور از اون کتابی که برای ماها میخون دیگه در صورتی که چنین نیست میگه که بعد این مرس ابن موسیب این چینی کاری را میکردن و نباید این چینی کاری بشه تدریسه و بهتری میگفته بشه فی کتاب امام بخاری در کتابش به ما خبر داده نه از کتابش فرق بین از کتابش و در کتابش امام بخاری از کتابش به ما خبردار یعنی خودش برای ما خوند از کتابش ولی که در کتابش یعنی در اون کتابی که ما خوندیم بداریم میخونیم خب از جمعه تدریسات این که تفری دو سالش بیشتر نیست سالش بیشتر نیست بیار در جلسه حاضر بشه همراه پدرش بعض غلما چیلی نمی کردن بچه هاشون و از باب تبرد بیشه ران فلان عالم یا فلان صحاب دو ساله و یک ساله می آورده سده حالا اون بچه وقتی که بزرگ می شد کتاب و از بدرش می گرفت می گفت که نه و اقوار نه می بیاد امام زهبی که این فایده ایستماع رو ندارد این ربایت منقطعه و نمیشه بهش احتجاج کرد و فایده ایتساد رو ندارد چون نه خودش عقلی داشته فهم مترکی داشته که درست بشنه از شیخ و نه هم شیخ قصدش داشته که بود این حدیث و این از اجازه هم کانیتره چون اجازه متقبله و این اتصال درش نیست. بله. و حضور و ابن آمین از آدم جمسرم به اجازه کلا شیح کلا شیح کلا شیح اله یکون حضور و عرشیح انشازم و محدثم و ها یکم و ای خلقه تو اقرار رو به نطابی اسم که به منظورت منذ الانتمائه له في الروايه وقد توارد حدثنا حجاج بن محمد قال قال إذن فسيغته فسيغته قال ابن جريج بسيله قصيقه قال على القصص فقد توتر استخاضه راوي الاسحاقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحب فحب الذين اذا قال في منجوب ان تطعمونه بالذات الذي قد طبع عليه وسلم فايسنا لم يكن ذلك له الا مجرد وهم فقوله قال رسول الله صلى الله عليه فمحمود فمحمود على الريق محمد بن الربيع وهذه همته الذرب وهذه فكره ظالما فكذا من من الصابين معروف بلقاء ذي الذفافيد فقول عمر قال عائشه فقول النذيري قال ابو بكر راسا في امور الاقتصاد واربع من لبذ اقاد لبذ عن وارفع من عن وارفع من عن اقدرنا وذكر لنا وانبانا وارفع من ذلك تحدثنا وصنعنا واما كثيره المتakhir فاننا وضعنا وكتب اگر اون شیخ اجازه نده بهش به اجازه کلشه اگر اجازه بهش نده اسمش در اون کتاب یاد نشه اون شیخ تعیید نکنه حق نداره که اون طفل بگه شیخ با ما خبرداد هرچنکه در اون جلسه حضور پیدا کرده و شیده مگر این که میگه مگر اسرس ناست که اون شخصی که حاضر میشه در اون جلسه پیش اون مخدس یا حافظ بفهمه که اون استاد چی میگه مثلا 7-8 سال داشته باشه مثل اناس مثل ابن عباس بفهمه و درک بکنه شعور داشته باشه اون شیخش چی داره بگه و بعد هم شیخ اقرار بکنه به وقت تب تعیید بکنه بنویده مثلا بلاش که این تبل از من شنیده این تبل از من شنیده اینجا علماء حدیث اتفاق دارند بر این که این اجازه صحت دارد. حالا اتفاق نظر جمهور ریاض بگیم قول اثرع ورا بر اینه اجازه هست و اجازه هم معتبره مثل این که خاصه بود و از شیخ. از نمونه‌های آداب حدثنا حجاج بن محمد قال قال, قال انه جری. قالا وقال بحث حجفانه نیست بحث قاله قاله قال ابن وجره شد بیگه سیغه قاله در این ناس در این اثنات مببی برای اتصال نیست یعنی منتصر نیست نوره بس اره تکرار شد قاله هشان بعمال اونجا گفت که چی محمول برای اتصال اینجا گفت محمول برای ص мазиад дейбала худша мегирад бахси саҳобаст саҳоба зиёд мегӯян قال قراسات асосан ворасет табиият قال عن نبی غیرا قال قال نبی соллаллохи алайхи ва саллам зиёд истифода мекунанд мегӯяд ки ин ҷо хатти мушттисале фақат мо ҳалл иттисоле ки кано мимн тиюр тана самаъ самаъуҳу мин расулуллоҳ соллаллохи алайхи ва саллам агар теъафи аин дошта бошед ки аз وager fa in kana lam yakun ilahu illa mujarrad ar-ru'ya miga wala hatakid al-in'ibarat yani yakam khob miga fa in kana fa in kana lam yakun lahu illa mujarrad ar-ru'ya taqulu qara بستی که صحابی که ما زن و جوانمون بر اینی که از رسول الله صلی الله علیه و نشیده مثل محمود بن یا ابو حمزه سعد ابن سعد یا بطخیلی مروان یا انس misalkan روایت که از از عهد مکه نقل می‌بونه میگه این روایت مرسل این قال رسول الله صلی الله علیه و آله در سند بگه مثلا انس ابن مالک بگه که رسول الله صلی الله علیه و در مکه این گفت در ذات اونجا حضور این از مصب هست و مرسل صحابی هم به اجماع عمم سحر داره که صحابه همین عدود هم و از, و از صحابه های دیگر شدیدن همچنین یک قاله از تابعی که معروف به ملاقات صحابی هست محمول به استماعه مثل عربه از آیشه و از سیرین از رو هره ره همین ها محمول به اتصال و حالا از پایین شروع میکنه. کنه پایین ترین حالا لفظ اتصال قاله هست بعد از اون عند و بالاتر از عند اخبارنا اخبرنا زخبرنا ذكرنا له وانبانا فبراتنا ان حدثنا وسمعت اكوين في الكتاب و درسلام متاخرين به كه انبهنا دغن و كتبه الينا همشون یک یک این خلاصې بحث صيغهای اتصال جلسه آینده ان شاء بحث مقلوبه اخرین بحث از علوم حدیث بحث مقلوبه که جلسه آینده بورس کن بعد هست، مسائل عام که ما استفاده میکنیم از مباحث عام و حاشی که ابن امام ذهبی در کتاب مقدمه نوشته. صلى الله علیه و سلم